حیال الصلات خیر خوب بگیم حیا علام همیون عا علاس بعد به صاد وصل میشه صاد سفیر داره صاد خوب بگید علاس آخرش که با میشیم صلات ت نمیگیم صلاه حیال الصلاه حیا علاصلاه ای بعث کردیم حیال الصلات حیالص که واسه نکنیم بهتره چون معصوم نیست